بنامه خدای خدای یگانی مهربان سلام. ای برادر قصه چون پیمانه است معنی در به سال دانه است دانی معنا بگیرد مرد عقل ننگرد پیمانه را گرگشت نقل افسانه ها از جمله جلوه ها جذاب و حکمت ها میز فرهنگ مردم به شمار میرن. قصه و افسانه مثل خواب و با زندگی پیوستگی و شباهت دارند اما خود زندگی نیستن. رو براتون نقد میکنم به نام جنایت مایه برکت است از سرزمین مردم ویتنام برگرفته است کتاب هدیه کلاغها ترجمه عبدالصالح پاک و تنقرولی یلگی روزی بود، روزگاری بود، مردی بود که عاقلی و دانایی اون زبانزد آم و خاص بود. این مرد هرچی کتاب پیدا میکرد میخوند و بر معلومات خودش اضافه میکرد. مردم اون سرزمین اسم این مرد و گذاشته بودن حلال مشکلات. چون هر کسی هر مشکلی داشت با اون در میون میذاشت و اونم مشکلشو حل میکرد. با این حال این مرد نمیتونست مشکل مشکل خودشو حل و فصل کنه و همیشه توی کاراش ناموفق و ناتوان بود یکی از مشکلات این مرد بیافه خیلی زشتش بود به طوری که هیچ دختری حاضر نبود با اون ازدواج کنه و مرد از این غزیه رنج می برد. روزی از روزا مرد شنید که در جایی خیلی دور در آخر دنیا اونجایی که آسمون و زمین به هم میرسن بخت هر کس اونجاست و هر کس بخت خودش رو پیدا کنه و مشکل خودش رو با اون درمیون بذره بخت مشکلش رو حل میکنه مرد تصمیم گرفت به سراغ بخت خودش بره تو شاید اون بتونه گره از کار اون باز کنه کلسه مرد توش راهش رو برداشت و به راه افتاد مرد عاقل و دانا رفت و رفت و رفت تا اینکه شب شد و دیگه نتونست به راهش ادامه بده این ور, ور گشت آخر سر کلبهی پیدا کرد و رفت و در اون کلبه رو کوبید صاحب خونه از پش در گفت چیه؟ چی کی میخوای؟ مرد دانا گفت غریبم. از جای دوری اومدم. اگه اجازه بدین یه امشب مهمون شما باشم. سابخونه درو باز کرد و مرد دانا رو به کلوش دعوت کرد و ازش برسید. چی و کجا میری؟ مرد دانا ماجرای زندگیشو از اول تا آخر براش تعریف کرد. وقتی حرفای مرد دانا تموم شد صاحب خونه از ناراحتی آهی کشید و گفت ای مرد دانا منم مثل تو مشکلی دارم تا به حال هیچ کس نتونست اونو حل کنه شاید بعد از این هم کسی نتونه مشکل منو حل کنه مرد دانا از صاحب خونه پرسید تو چه مشکلی داری؟ صاحب خونه گفت من دختری دارم که لال مادرزاده و تا به حال کلمه حرف نزده تمام دخترای همسن و سال اون به خونه بخت رفتند ولی کسی به خواستگاری دختر من نیومده حالا موندم که چکنم اگه اگه تو لطفی کنی و از بخت اون بپرسی که راه حل این مشکل چیه واقعا در حق من برادری کردی مرد دانا قبول کرد و فردا صبح زود به راهش ادام میدم. مرد دانا رفت و رفت تا اینکه شب شد مرد مجبور شد که شب و در جایی بخوابه بازم در خونه رو به صدا صاحب خونه اونو به خونش پذیرفت و ازش پرسید ای مرد تو چی هستی از کجا میایی به کجا میری مرد دانا تموم ماجرای زندگیشو برای مرد صاحب خونه تعریف کرد وقتی حرفی اون تموم شد، مرد صاحب خونه آهی کشید و گفت آه، ای مهمان عزیز، حالا که خودت با پای خودت به دنبال بخت میری، زحمتی هم بکش، از بخت من هم راه حل مشکل منو بپرس مرد دانا پرسید، مشکل تو چیه؟ صاحب خونه گفت من توی حیات خونم سه تا درخت دارم که از راه فروش میوه اونا روزگارم و میگذرونم ولی فقط یکی از این درختها میوه میده و برای دوتای دیگه هر چی زحمت میکشم بیفایده است و میوه نمی ده. حتی شکوفم نمیکنه مرد دانا قبول کرد و فردای اون روز باز به راهش ادامه داد مرد رفت و رفت و رفت تا اینکه به رودخونه رسید هرچه فکر کرد که چجوری از اون رودخونه بگذره فکرش به جایی نرسید رودخونه بزرگ بود نه پلی داشت و نه جایی برای عبور مرد دانا تو فکر راه چارهی بود که یه دفعه چشش به یه ماهی بزرگ افتاد فورا ماهی و صدا زد آهای ماهی ماهی بزرگ با تو هم ماهی ماهی صدای مرد که شنید شناکنان به اون نزدیک شد و گفت تو کی هستی؟ از کجا میای؟ به کجا میری؟ مرد دانا برای ماهی تمام ماجرا رو تعریف کرد وقتی حرفهای مرد دانا تموم شد ماهی هم آهی کشید و گفت ای مرد منم مشکلی دارم مرد دانا پرسید مشکل؟ مگه ماهی هم مشکل دارن؟ من فکر میکردم مشکلات فقط مال آدم است. ماهی آه سردی کشید و با ناراحتی جواب داد من مشکل بزرگی دارم مشکلم اینی که الان مدت زیادی از ماهی شدن من گذشته همه دوستان به اشدها ها تبدیل شدن و از اینجا رفتن ولی نمیدونم چرا من هنوز به اشده ها تبدیل نشدم اگه اگه قبول کنی که از بخت من بپرسی که راه چاره چیه من تو رو از این رودخونه بزرگ عبور میدم مرد دانا قبول کرد و توی چشم هم زدن سوار بر پشت ماهی بزرگ شد و از رودخونه گذشت. مرد دانا رفت و رفت و رفت و رسید به جایی که اونجا زمین و آسمون به هم گره خورده بود اونجا بود که یهو چشش به دروازی بزرگ باغی افتاد فوری رفت و وارد باغ شد دید که همه بختا اونجا دور هم نشستن و با هم حرف میزنن. تا چشم مرد دانا به بخت افتاد اول بخت ماهی رو پیدا کرد و علت اجدها نشدن ماهی رو از اون پرسید بخت ماهی فکری کرد و گفت ها لای دندونای ماهی یه مروارید خیلی قیمتی گیر کرده اگه کسی پیدا بشه که اون مروارید رو از لای دندونای ماهی برداره ماهی همون دم به اجدهای بزرگی تبدیل میشه مرد دانا خوشحال شد و به سراغ بخت مرد باقبون رفت و از اون هم علت میوه ندادن دوتا از درختاشو پرسید بخت مرد باقبون گفت در زیر هر کدوم از درخت‌ها یک گوسه پر از طلا دفن شده و اگه کسی اونو پیدا کنه و از کنار ریشه های درخت‌ها برداره، درختها فوراً به بار میشینن و های شیرینی میدن. مرد دانا بخت دختر لالو پیدا کرد و علت حرف نزدن دختر رو ازش پرسید. وقتی دختر لال جواب داد، علت حرف نزدن دختر خیلی ساده است. بله این دختر تا با حال با هیچ مرد دانایی هم کلام و هم صحبت نشده. اگه مرد دانایی با اون صحبت کنه، اون هم زبونش باز میشه و حرف میزنه. مرد دانا به یاد مشکل خودش افتاد. در به در دنبال بخت خودش گشت و گشت، ولی، ولی، ولی دیگه تمام بختها از اونجا رفته بودن. مرد دانا، نتونست گره کار خودشو باز کنه اما باز خوشحال بود که حداقل تونسته مشکلات دیگر اونو حل کنه بنابراین چهارهای جز برگشتن ندا مرد دانا وقتی به رودخونه رسید دید که ماهی بزرگ به انتظارش نشسته ماهی تا مرد دانا رو دید به طرف شنانکنان اومد و ازش پرسید ای مرد دانا دوای درد منو پیدا کردی مرد دانا گفت البته که پیدا کردم لای دندونای تو مروارید گرانبههایی گیر کرده اگه کسی اون مرواریت رو از لای دندونات بیرون بیاره، فوری به اجده تبدیل میشی. ماهی با خوشحالی گفت، پس خودت، خودت، اون مرواریت رو بیرون بکش و اونو بردار. مرد دانا قبول کرد، مرواریت رو بیرون کشید و ماهی هم به اجده تبدیل شد و مرد دانا رو به اون طرف رو برد. مرد دانا رفت و رفت و رفت تا اینکه به خونه مرد باقبون رسید مرد باقبون از مرد دانا پرسید ای مرد دانا دوای درد درخت‌های منو پیدا کردی یا نه مرد دانا جواب داد البته که پیدا کردم همه های درخت درخت‌های تو به خاطر کوزه‌های پر از طلایی که زیر ریشه‌های درخت‌ها دفن شده اگه کسی اون کوزه ها رو بیرون بکشه درختها ها فورا ثمر میدن باغبون با خوشحالی گفت ای مرد دانا بیا کمک کن تا کوزه ها رو از زیر درختها بیرون بیاریم اون وقت یک کوزش برای تو یک کوزهشم برای من مرد دانا قبول کرد و با کمک مرد باغبون کوزه های طلا رو از زیر درختها بیرون کشید یکی از کوزه ها رو مرد دانا برداشت و یکی دیگر رو مرد باقی بون و در یه چشم هم زدن درخت ها به شکوفه نشستن مرد دانا کوزه طلا رو برداشت و از باغبون خداحافظی کرد و رفت و رفت تا اینکه به ی دختر لال رسید. دختر لال آروم یک گوشه نشسته بود و به دور دست‌ها خیره مونده بود. مرد دانا جلو رفت و گفت: سلام، من علت لال بودن تو رو پیدا کردم. دختر لال تا کلام مرد دانا رو شنید شروع کرد به حرف زدن. پدر دختر لال وقتی دید دخترش زبون باز کرده خیلی خوشحال شد بعد مرد دانا علت حرف نزدن دختر رو تعریف کرد وقتی حرفای مرد دانا تموم شد پدر دختر گفت ای مرد دانا تو باعث شدی که دخترم زبون باز کنه و حرف بزنه حالا من نمیدونم دونم که چجوری باید خوبی های تو رو جبران کنم مرد دانا همونجا از دختر خواستگاری کرد. پدر و دختر هر دو قبول کردن و جشن عروسی بزرگی گرفتند. مرد دانا خونه ای برای خودش ساخت و با زنش زندگی آرومی رو شروع کردن. مرد دانا که صاحب کوزه پر از طلا و مروارید گرانبها شده بود، از همه اهل شهر ثروتمندتر شد و آوازگ دانایی و ثروت اون در همه ولایت پیچید و خبر به گوش پادشاه رسید. پادشاه مدتها به دنبال مرد دانا گشت و گشت تا اونو به وزیری خودش انتخاب کنه و بالاخره مرد دانا رو پیدا کرد. مرد دانا بعد از مدتی وزیری عادل و مهربون شد. اون سالهای سال به مردم کمک کرد بعدها هرکس کس سرنوشت اونو شنید ناخداغا زیر میگفت، گفت دناهت مایه برکت که شنیدید؟ افسانی بود به نام قناعت مایه برکت است از سرزمین ویتنام که امشب براتون نقل کردم این افسانی ویتنامی برگرفته از کتاب هدیه کلاغ‌ها ترجمه عبد پاک و تنقرقلی یلری بود افسانه ها از هر نقطه این کره خاکی که اومده باشن وطن خاصی ندارن و متعلق به همه مردم جهانن هزار افسان کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت صالح ویراستار بهار گیویان اجرام مهران دوستی صداوردار راهله قفاری حی کننده زهرا عبدالله آزامه تا افسانه دیگر بدرود